قومیه 642. این روزها از دل و دماغ افتادم خیلی ناراحتم. هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا میکند که مولانا و شمس شب و روز خودشان را توی آن اتاق حبس میکنند و پچپش کنان حرف میزنند، من بیشتر در سکوت فرو می روم. ای کاش درباره موضوعهایی مثل فقه و حدیث و فلسفه و تاریخ و منطق چیزهایی می دانستم. بعضی وقتها دلم می خواهد از فرط ناراحتی شورش بکنم که چرا زن آفریده شده هم. دختر پایش را که به دنیا می گذارد همین طور کار یادش میدهند: غذا پختن، رفت و خاکسترمال کردن رختهای کثیف، آبآوردن از رودخانه، وصله کردن جوراب، گرفتن کره از ماست خمیر درست کردن نان پختن و غیره همه را یاد میگیری پشت سر هم. بعضی زنها در کنار این کارها یا به جای این کارها یاد میگیرند از حیکل و سر و ریختشان استفاده کنند و هوش از سر مردها ببرند. اما خیلی هم فرق نمی کند. حالا یا آن طور باشد یا این طور باید خدمت بکنی. کسی کتاب دست زنها نمی دهد. حال که آنقدر دلم میخواست مولانا همانطور که امروز با شمس صحبت می کند، با من هم با حرارت حرف میزد با من هم مشورت میکرد. سال اول ازدواجمان بود آن وقتها عادت کرده بودم در هر فرصتی که تنها میماندم به کتابخانه شوهرم بروم بین کتاب ها و دستنوشته های مولانا که مثل تخم چشم مراقبشان بود چهار زانو می نشستم بوی نا و کنگگیشان را به سینه میکشیدم و با خود می گفتفتم چراست که در خود پنهان کردهام. مولانا عاشق کتابهایش است. کتابخانهش پر است از نسخه های خطی. یکی از یکی قیمتی تر بیشترش هم میراس پدر مرحومش در میان این کتابها معارف عزیز دردانه است سطر به سطر از بر می داندش. بیشتر شبها تا موقعی که سپیده بزند بیدار می ماند و کتاب می خاند. حالم که حتما خیلی وقت است همه کلمات معارف را ختم کرده. آدم چطور میتواند کتابی را که آخرش را میداند هر بار با کنجکاوی تازه‌ای بخواند؟ مولانا میگوید اگر کیسه کیسه طلا هم به من بدهند یک صفحه از کتاب‌های پدرم را هم نمیدهم. این کتاب ها که نمی شود قیمتی رویشان گذاشت، همه یادگار جدمند. آنها از پدرم به من رسیده، موقعش که برسد، من هم به پسرانم میسپرمشان این را که مولانا به کتاب‌هایش چقدر بها می‌دهد، خیلی وقت پیش اما متاسفانه به تلخی فهمیدم. هنوز یک سال از ازدواجمان نگذشته بود، در خانه تنها بودم، یک دفعه فکری به سرم زد، یک دستمال و یک کاسه آب برداشتم و رفتم توی کتابخانه. مصمم بودم، میخواستم کتابهایش را یکی یکی تمیز کنم و باعث خوشحالیش بشوم. همه کتاب ها را از قفسه‌ها پایین آوردم و یک پارچه مخملی برداشتم پارچه را توی گلاب فرو می کردم و با آن جلد کتاب را خوب تمیز می کردم. توی این دیار معتقدند یک جن بیار هست که مزه کتاب را دوست دارد و آشق جویدن صفحه کتاب است. اسمش هم کبی کچ است. برای همین میگویند برای دفع کردن این جن باید بالای هر کتاب یک جمله هشدار نوشت. ای کبی کچ از این کتاب دوری کن. این صفحه ها به درد تو نمی خورن. من هم هر کتابی را که پاک میکردم به این نوشته نگاه میکردم و لبخند میزدم. در آن بعد از ظهر همه کتاب های کتاب را تک به تک گردگیری کردم. موقع کار کتاب احیاء علوم الدین نوشته امام قزالی را هم کنار دستم گذاشته بودم. هر از گاه ورقی می زدم و سعی می کردم بفهمم چه نوشته. سواد دارم اما برای فهمیدن دنیای کتاب‌ها سواد خواندن داشتن کافیست مگر خلاصه سرم گرم شده بود و نفهمیدم چه مدت گذشت یک دفعه صدایی سرد شنیدم خاتون اینجا چه می تا برگشتم با مولانا چشم در چشم شدم چه برگشته بود به خانه؟ صدای پایش را نشنیده بودم، گفتم خوش آمدی آقا، اما او دم نزد، صورتش چنان حالت عجیبی گرفته بود که لحظه‌ای گمان کردم به مردی غریبه نگاه میکنم نه به شوهر خودم، در طول هشت سالی که زن و شوهرین فقط همان یک بار با من تون ترف زده. با صدایی خفه گفتم: داشتم اینجاها را تمیز می کردم. همین. فکر کردم خوشت می میآید. مولانا گفت: اما خوشم نیامد. تردید ندارم که نیتت خوب بوده. اما خواهش میکنم هیچ وقت به کتاب هایم دست نزن. اگر لازم باشد تمیز شوم، خودم تمیزشان می کنم. خواهشم از تو این است که به این اتاق وارد نشوی و نگذاری کس دیگری هم به این اتاق وارد شود از آن روز به بعد دیگر هیچ وقت به کتابهای شوهرم دست نزدم حتی مواقعی هم که کسی در خانه نبود به کتاب خانه نرفتم فهمیدم در کتاب ها به روی من بسته است نگو فقط کبی کچ نبوده که باید از کتاب های شوهرم دوره می کرده. من هم بودم آن صفحه ها به درد من نمیخورده با آنکه باعث دلخوریم شده بود اما دیگر به این وضعیت عادت کرده بودم حتی فراموشم شده بود تا روزی که شمس تبریزی به خانه من آمد او و مولانا چهل روز که خودشان را توی کتابخانه خانه حبس کردند خاطره های قدیمی به سرعت زنده شدند پس در اتاقی که ورود به آن برای من قدغن بود برای شمس چهار تاغ باز بود لجم گرفت جایی در درونم در اعماغ وجودم زخمی سرباز کرد که حتی از وجودش هم خبر نداشتم